وقتی باره لحب ده توکا عطر گل سره ده روکا مگد دیچم ده گوکا دیر جیگرم ده بوکا مگد دیچم ده گوکا, دیر جیگرم ده, دی ده گوکا دیر جیگرم ده بوکا از تو من رسا تا امرو پشت سر دو, دو دو داره توی تش عشق ده سته نه روج و از تو مدرسه تا امرو پشت سر و دو دو داره توی تشه اشغاد سطه نا روزو نشود دره گی جو وی جو ایلاردهو همیشه کلا تو دره گی جو وی جو ایلاردهو همیشه کلا تو دره چراغو چراغ چراغ کری کربون سارود تو دره چراغو چراغ